حوال کردن پادشاه قبول توبه نمامان و حجر گشایان این جنایت بر تن و ارز است زخم بر رکهای آن نیکو است گرچه نفس واحدیم از روج جان ظاهرا دورم از این سود و زیان توحمتی بر بنده شهر آر نیست جز مزید حلم و ازتظهار نیست متهم را شاه چون قارون کند بیگنه را تو نظر کن چون کند شاه را قافل مدن از کار کست مانه اظهار آن حلم است و بست من هنا یشفه به پیش علم او لا وار الا هلم او آن گناه اول زهلمش می جهد برنه حیبت آن مجالش کی دهد خونبه های جرم نفس قاتله هست بر هلمش دیات بر آقله مستوی خود نفس ما زنهرم بود دیر در مستی کلا هز ویرو بود گر نساقی هم بودی بادریز دیف با آدم کجا کردی ستیز گاه علم آدم ملایک را که بود اوستاد علم و نقاد نقود چون که در جنت شراب حلم خورد شد زیک بازی شیطان روی زد آن بلا تعلیم بدود زیرک و دانا و چستش کرده بود باز آن افیون هلم سخت او دوزد را آورد سوی رخت او عقل آیت سوی حلمش مستجیر ساغیم تو بوده ای دستم بگی